قصه‌ی هزار یک شب شب و ام اوت القلوب گفت حس از این قمین مباشید آنگاه با شیخ گفت ایشان را در خانه خیش ده و زن خود را بگو که ایشان را به گرما ببرده جامعه های نکو و شایسته به دیشان بپوشاند. مشتی زر نیز به شیخ سوق داد. روز دیگر قوت القلوب سوار شده به خانه شیخ سوق رفت. و زن شیخ را سلام کرد زن شیخ برپای خواست و دست او را ببوسید اوت القلوب دید که زن شیخ مادر و خواهر قانم را به گرما ببرده و جامعه نکوب دیشان پوشانیده ساعتی با ایشان به حدیث نشست پس از آن از زن شیخ حالت بیمار باز پرسید زن شیخ گفت هنوز به حالت نخست است قوت القلوب با ایشان گفت برخیزید که به ایادت رویم مادر و خواهر قانم و زن شیخ سوق با قوت القلوب برخاسته به نزد قانم بیامدند و بر بالین او بنشستند قانم از ایشان شنید که نام قوت القلوب همی برند. با تن نظار و روان کاسته سر از بالین برداشته گفت یا قوت القلوب پس قوت القلوب به سوی اون نظاره کرده او را بشناخت و به آواز بلند گفت لبیک یا حبیبی قانم گفت نزدیک من آی قوت القلوب گفت مگر تو قانم بن ایوبی؟ گفت آری قانم بن ایوبم قوت القلوب چون این بشنید بیهوش شد و مادر و خاهر قانم نیز چون این سخنان بشنیدند فریاد کشیده بیخود بیفتادند چون به خدا آمدند قوت القلوب گفت منت خدای را که پراکندگی ما را جمع آورد پس نزدیکتر به قانم بنشست و ماجرای خود و خلیفه را بیان کرد و گفت من نیکویی های تو را با خلیفه گفتم و او سخن مرا صدق دانسته و از تو خوشنود شده و بسی آرزومند دیدار تو است و مرا به تو هدیه داده. آنم از این بشارت خورسند شد. عوض القلوب گفت یک از جای خیشتن بر نخیزید تا من بازگردم. در حال برخاسته به قصر خود رفت و از آن صندوق که در خانه قانم به جعفر برمکی سپرده بود مشتی زر برگرفته بیاورد و به شیخ سوق داده گفت با این زرها به هر یکی از ایشان جامعه حریر و دیبا مهیا کن آنگاه قوت القلوب مادر و خواهر قانم را به گرمابه فرستاد و شربت و شراب آماده کرد چون از گرمابه به در آمدند جام پوشیده خوردنی بخوردند. سه روز قوت القلوب در آنجا بماند و های مقوی به ایشان بخورانید و شرابشان بنوشانید تا اینکه مزاجشان صحت یافت و روانشان قوت گرفت بار دیگر ایشان را به گرما بفرستاد چون بیرون آمدند جامعهای جداگانه بهتر از نخستین بپوشانید و خود به نزد خلیفه بازگشته زمین ببوسید و خلیفه را از پدید آوردن قانم و مادر و خواهر او آگاه کرد خلیفه جعفر برمکی را با خادمان به آوردن قانم بفرستاد و قوت القلوب پیش از آنکه جعفر برمکی به نزد قانم آید به دانجا رفته با قانم گفت خلیفه تو را خواسته است باید با زبان فسیح سخنگویی و دل قوی داری آنگاه جامعه فاخر بر وی بپوشانید و بسی زر به دوداد و گفت اینها را به حاجبان و خاج سرایان خلیفه بازل کن در این گفتگو بودند که جعفر برمکی بیامد قانم برخاسته زمین ببوسید و جعفر او را برداشته همی رفتند تا به بارگاه خلیفه رسیدند خلیفه او را به پیشگاه بخواست قانم در پیش خلیفه سه بار زمین بوسید و با زبان فسیح و گفتار خوش نیازمندی آغاز کرده خلیفه را سنا گفت و این ابیات برخاند ایا ملک تو از این آفتاب رادتری زبان هر که دلیل بادا لال به عالم از ملکان مالک کل ملوک توی جلالشان همه از توست گاه جود و جمال سواب کرد که پیدا نکرد هر دو جهان یگان ایزد دادار بی و همال وگرنه هر دو جهان را کف تو بخشیدی، امید بنده نماندی به ایزد متعال خلیفه از فساحت زبان و سلاست بیان قانم در عجب شد چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است.